بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الانبياء وسيدا المرسلين وال وصحبه أجمعين أما بعد ساجلس موضوعش دراسته در زندگی فقه زندگی يا آداب زندگی معاشرت زندگی منزل نبوغ هر چی میخوام اسمش بزنم در پرتو قرآن و سنت چنان که خدا توصیه و چنان رسول الله صلی الله علیه و سلم در سنتش بهش اشاره ما از زندگیش زندگی شوردگیری میگه لکن انا فی رسول الله اسوه حسنه برای شما در رسول الله صلی الله علیه و سلم الگویی هست ما اولب داریم می از منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم اون منزلی محکم اون منزلی قشنگ و زیبا از بیرون داخل نه اون منزلی که از بیرون قشنگ مثل یک کادو زندگی مثل یک کادو میمونه اصلا تقاضا داشته باشه بیا ازدواج بکنه این کادو این هدیه خداونی این توفیق الهی از بیرون زیبا خشنگ ولی از داخل یک کادوی خالی هیچی توش نباشه چه زندگیه خوش به نظر شما محکم زندگی باید از بیرون و داخل خوشکل و زیبا باشه خشنگ باشه. نه اینکه کادو از بیرونش قشنگ باشه بل از داخل خراب باشه یا هیچی توش نباشه؟ زندگی با زیبا باشه حالا چه میخواد مرد باشه که میفا زن باشه؟ باید اهمیت بدن به ظاهرشون مظهرشون از اون چیزهایی که شرط توصیه کرده از نسواف زدن از نماز خوندن توی منزل و اون زن به تمیزی خونه به پاکی خونه اهمیت بده به بچه هاش اهمیت بده به تربیت بچه هاش زندگی فقط ظاهر نیست معناست یعنی اینو میخوام بگن این زندگی محکمیه این زندگی پایداریه که ما دنبالش شخصی، زندگی با اساس طبیل, مستحکم، که نتونه نه شیطان خرابش بکنه اون شیطانی که هرشش روی آب گذاشته و اطرافیانش رو میزنه فلانی چکار کردی و فلانی چکار کردی فلانی میگه فلان کارو رو کردم و فلانی میگه فلان کارو رو کردم یکی از اونها میگه میگه من بین زن و شوهری رو افرقه هم داختم هم میاد اون ابلیس بلند میشه برو در آغوش میگه میگه تو بهتنین کارو کردی. کردی شی در این که با نزغاتش و سابقه اش بنیانش تفرقه بندازه پایه و اساس منزه را خراب کنه شر به همون آداب زندگی رو یاد داده تا این که پایی زندگی قوی بشه مستحکم بشه شالدهش از همون ابتداش قوی بشه یک سری حقوق گذاشته بر شوهر یک حقوق گذاشته بر زن که اون زندگی پایدار بشه یعنی اون چیزی که شر گفته درست سنگینه ولی مصلحت ما خودمونه اگر شر گفته که ما نماز صبح ولم نشیم بیاین اون به مسلحت ما خودمونه اگر گفته حجاب بپوشیم زنا حجاب بپوشن به مسلحت خودشونه هیچ وقت خداوند امری فرمایشی دستوری نداشته مگر به مسلحت خود بشر و خود انسان ها بوده پس انسان باید دنبال استحکام زندگی محکم سازی زندگیش باشه باید, باید در اون زندگیش تشک بکنه از محبت از عبادت و طاعم از فرمانبری از خداوند باید مثل یک مزرعه چیزهایی کشت بکنه که یک نزش برداشت بکنه باید از اون لباسها لباسهای تقوی برای خودش بسازه و لباس و تقوی داری که خیلی درست لباس انسانو رو زیوبا میکنه آراسته میکنه زن باید دنبال آراستگیش باشه ولی مهمترین و بهترین آراستگی تقویست تقوی. ترس از خداونده این آراستگی هست قلب من آراسته باشه قلب من درست باشه ن بس توش باشه، نقیبت توش باشه، نه دروغ توش باشه و اون چیزهایی که سبب میشه زندگی پایداریش را از دست بده، مستحکمیش را از دست بده، شکاف برداره خراب بشه، این چیزها زندگی را خراب میکنه. پس ما دنبال لباس تقوا هستیم. و لباس التقوا ذلک خیر. واس تقوا داشته باشید. یکی از اسباب پایداری زندگی تقواست. طرز خداونده ما باید مثل یک زنبور عسل باید از تلخی‌های زندگی باید شیرینی برداشت بکنیم غیر ممکنه نه مردش نه زنش اشتباهش تر نذنه نه مرد نه در زمان رسول الله, الله صلی الله علیه وسلم در اشتباهاتی رخ میداده از همساران رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول الله علیه و آله میومد درمانش میکرد تا این که زندگی مستم باقی بمونه حالا ما اگر فرصت شد به موقع انشال مثال میذارییم که چ رسول الله صلی الله علیه و عاتلا زندگیش و شیرین نگه می چرا بهش هایی هست که ما میتونیم زندگی رو شیرین نگهند داریم؟ این چهان تا اساس که مثالش ما در قرآن داریم و قبلا اشاره کردیم در این تصاویر ما میبییم. حالابی خلال غل و مننفسوسکن از اوواجل ل تول ری ها بحث سکن بحث مسکن منزل گذاشتیم که نشانه اون سکن و مسکن هست مزل رو گذاشتیم اوکم حرفون لکن. لباس و پارچه گذاشتیم و لباس و تقوه ذلك خیر و هن لباس لكم و انتون لباس لهم و کندوی اثر رو گذاشتیم که زندگی باید شیرین باشه زندگی باید شیرین باقی بمونه این چیزها چیزهای به معروف چهار تا اساس و پایه‌ی زندگی هست که باید در زندگی باشه باید, نب... باید در زندگی استوار باقی بمونه هر گاه اینها لحظیدن هر اینها دشوار اشکال شدن اونجا هست که زندگیمون خراب میشه حالا بعد از این که ما پرداختیم به بحث حقوق زن و بعدم حقوقش رو هم می پرداختیم به آداب زناشویی که بریم به اختلافات و حل اختلافات آداب زن، زناشویی افلی مسئله که ما باید بیدونیم باید بیدونیم که زن قدرت و تواناییش خیلی بالاست در این که زندگیش را پایدار نگه داره زنی که زندگی را مخکم نگه می داره همیشه ما در تعبیر خواب میگیم مثلا بالفرم اگر کسی جیب سخت خونه ترک برداشته شوهره یا مریض میشه یا خود میکنه سخت خونه شوهره و اون دیوارها زنه دیوار و ستونهای زندگی اگر دیوارها اگر خراب بشن سخت به خراب میشه خیلی مهمه که دیوار مفکم باشه دیوار زندگی را زن میسازه زن راعیه هست مسکول زندگی هست مسکول خانداری هست زن که توانمندی شیرین سازی زندگی رو داره، یعنی زن که زندگی رو شیرین دی کنه بس ادار صلی الله علیه و سلام کتاب به زنان می گوید ما رأیتو من ناقصات عقل و دین اذهب للب رجل حازم من اشجا کن ما رأیتو من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من اشجا کن ندیم زن از لحاظ عقلی ناقص باشه عقل زن ناقصه به قدرت آتفه ای که داره سبب میشه که جاهایی عقل و اندیشه خودش رو بکار نبره یعنی بیاد با احساسات و آتفه خودش شب بکنه زن در اینجا ذهب داره در این که از عقل خوده ولی آتفهش چنان قره است ای هست اینجا اشاره رسول الله صلی الله علیه و سلم که میتونه یک مرد حاضر از یک گلی که پر از خار عسل و شیرینی برداشت بکنه میتونه راحت عقل یک مرد را در قبضه و چند چنگ خودش در بیاره زنی که میتونه با بستر عاطفه و بستر زیبایی و قشنگی در زندگی آرامش بیاره میتونه شوهر را آرام بکنه و به چند خودش در بیاره نه با تندی، نه با خشونت، نه با الفاظتون، با نرمی مرد راحت نرمیشه مرد راحت فریق میکره مرد راحت گول میکره درست مرد قریه هست ولی که مرد در مقابل آتفه زعیفه مرد کم میاره خاطر همی یک سری مشکلات زندگی دست زن که زن میتونه حل بکنه و تبانویش داره و اینجا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره دارن به بحث این که بحث زندگی را به نقضی زن می کنه و زن از که اداره میکنه و زن از که شوهر را می کنه از آداب زنشی بحث معاشرت و مداعبت اینی که زن و شوهر دیگه در یک اداره اون مسترورش نیستن یا در یک مدرسه نیستن که با هم خیلی رسمی صحبت بکنن رسمی بیشینن شوخی با هم دیگه نداشته باشن اینطوری نیست زندگی هم مردش هم زنش باید هر دوتاشون دستی نرم و لطیفی داشته باشن در زندگی همون مردش همون زنش باید با عاطفه زندگی بکنند. رسول الله عليه وسلم بفرماية كل شيء ليس من ذكر الله فهو السهو واللهب هات شيء ذكر خدا تشنبه اشياء السهو واللهب بيه ده إلا أربعة ملل شاكي مشروع رجل بين الغرضين وتأذيبه كرسه وتعلمه السباحه وملاعبته أهله شب شيء هست كي لهو بس ايه ك دليل المسابقية دمان دي باشه یا بخواد انسان هیگونتو تربیت بکنه یا شنا یا دیگه نه او وردهش و بحث ملاعظتی که بین ملاعظت و معاشقتی که بین زن و شوهره نباید تو زندگی خوش باشن با هم دیگه یک سری قوانین هست تو زندگی کشمه ما میدینیم هنیشه انسان میدینه و با دیدن خود کذابت میکنه چه مرده چه زنش هرچند که زن بیشتر میشنه ولی که زنم دیدن چه زن هست. حس شنوایی زن قدیه هست مردم همینطور بینه و با دیدن خودش قضابت میکنه مرد اگر ببینه که زن آرومه توی منزل به زندگیش اهمیت میده در مقابل خشمش خشم خودش رو فرو می اون جا هست که مرد اثیر میشه وقتی که زن خشبی نمیشه زندگی یعنی اون مرد را به قبضی خودش گرفته. اون فانون زندگی است. اگر زن قشنگ بشه، زن عصبانی بشه، اونجا هست که زن بد به اخلاق، و توصیه میشه که اون زن دیگه باید یا تأدیبش بکنی یا بهش بفهمونی یا نصیحتش بکنی تا اینکه اون زن اصلاح بشه، اصلاح نشد دیگه بعد طلاق میاد. بهداران می رسول الله صلی الله علیه و سلم می اگر مردی زنی به اخلاقش نبود، طلاقش داده دعاش اجابت نمیشه. یعنی دیگه خدا من از دست این زباحت تو. از مردها هستن که فعیل میکنن زنانشون تمنو از خدا امروز فقط از فردا زنشو فوت بکنه بی بیه سگه بکنه تمنوی ما دیگه دلش نوره چرا چون دل خوشی نداره چون توی خونه میان هی حیوانه قه و حیوانا دیدن پرخاش و سر و هیچ عمره چیزی نیست خب هیچ زندگی‌ای هست وقتی که اون منزل توش آرامش نداره ما نمیبینیم اینجا هست بزن تمنو مرد مرز دلش داره بنظرتن که تو هم آرام بود اون جا هست که تعامل بنت میشه زن که تو هم از مرزش داد حالا که بعضی ها تو زهن خودشون این چیدیم بگن خب همش زن همش زن کتا بیاد پس چی؟ ما میگیم نبا مد مرد میگینه شما قراره که مرد را به تبضیح خودتون در میارید قرار نیست که شما طب فرما باشید قرار نیست که شما انتراسور باشید قرار نیست که شما حسیلت باشید شما قرار زندگی رو بکر کنید شما قرار پیچ مهره های سپ زندگی را سل کنید پس لازمه شما خطاه بیاید تا این که زندگیتون فایده رو استوار ببینه. نگاه هست که ما را میپهمونه. به ما میپهمونه نگاه ها. نگاه همون شوهر که ما چطور میتونه کونه توی منزل. یا ما با نگاه همون. خیلی جواب هست. نیاز نیست انسان. بگه آنچه که در درون باید نگاه کردن میتونه بپهمونه به خانمش. یا اون خانم میتونه به شوهرش بتهمونه. نگم لازم به سر صدا کردن نیست. با یک نگاه نجاح. یکی نگاهی یعنی فقط اون شوهر وقتی که اشتوا میکنه کنه. هر میکنه می فقط نگاهش کنید فقط بس. با یک لفت نگاهش بکنی. ببینید اون خشمش فرومی میبری یا نمیبری امتحان بکنید. اینها من دارم میگم. آداب معاشرت یا ارتواج و وفاداری. نباید معذبتوی زن را شروع کنه و فراموش نمیکنه اگر شما کوتاه اومدی خشتتو رو فرو بردی اونجا هست که همیشه یاد نیکتون در پرنده قلب شوهرتون باقی باشه و که من هم در بحثش هر چقدر زن‌ها سلطان یاد میکنن احسان میکنه یک عمری بر، با یک بدی کل اون خوبی ها رو فراموش میکنه ولی که من اینو میخوام بگم که در و وفا در طبع مردا بیشتره تا زنا هرچند که گفتن این سنجش سنجش نسبی هست جاهایی هست که زنا بیشتر وفا داره رسول الله صلی علیه و سلم خوبی دیدی بود در خدیجه نه تا زن گرفته بود ولی هیچ کدام جای خدیجه رو پر نمی‌کردند. کی می‌تونه جای خدیجه رو پر بکنه هیچ کس روزی رسول الله صلی اللہ علیه و سلم حدیه ی رو میترسه به رفقای خدی اینجا حدیثی خوانده میشه وقتی که رسول گوزل قربانی میگه اگه و دیگه را اصقاصتی کن جهل في عایشه ناراحت میشه در و خشگی میگن میگه که الله تو من. ناراحتش میکنه گفتن خدا عایشه میگه در روایت امید میگه که گفتن از این از این تریزان فیرزا. تریزان می چی میخواد تریزانی که مرد که مرده اصلا تریزان میگه خدا به دختر داد جوان داده جنون داده بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب عایشه میگه اینی روزت و حبها حب خدا محبتش رو دادیم هم کوچک محبت بخواداری هست خوبیهاش و فراموش یک ماه میگیرد عایشه رسول الله صلی الله علیه و سلم منو سازنده کردم اون مال این, کار. این کارو کرد داد ماشوداد جانشوداد فنام کرد این کارو کرد و اون کارو کرد خوبیها را هی بیادش خدا میگردد خدا هست که بیاد مرد میاد خدا هست که این زنیر مر را تحریف میکنه بله خدیجه یادش و یادوارش زنده موند هم در زمان زندگی رسول الله صلی در در حیاتش خدیجه و هم بعد از وفاتش مرده ولی یاد نیکش هم در قلب وفادار رسول الله صلی الله زنده و باید وفادار باشند و زنها باید این وفاداری رو با خوبی ها بکارن زنی که وفاداری میذاره زنی که مرده وفادار میکنه وقتی که زن با, خش... با فرو بردن خشم خودش مردش رو به قبله خودش در بیاره وقتی که زن خشم خودش را فرو ببره اونجا هست که مرد را اثیر میکن اونجا هست که میکاره گله های زیبا و قشنگ و خشکل در دل، در قلب شوهرش میکاره بلده کاری نصر آخم حرکن لکن درست خدا گفته که زنان شما کشت شما هست مردان هم کشت زندگی هستن حصوصا قلب مرد. ما این که گوز می‌خاریم ما این که می‌ره ما این که درداش اینجا خدیجه در قبرشه ولی این همچنان داره برداشت میکنه از اسناد از دایره الله داره از یاد خیر رسول الله هم داره رسول الله سلام بیادشه مرد فراموش نمیکنه، این بیادتون باشه مردها و همچنین زنها این قدرتی که توش باشه تخلفت خوبی هست سبب میشه آروم بشه سبب میشه تسکین پیدا بکنه سخت خیلی ولی میشه شدنی سودانی هست بحث دفلت تقافل کرم اخلاقی داشتن اکرام فقط این نیست صفره زیبا با گلهای رنگارن بیالیم جلو شوهر شوهر بفرما نه این نیست اکرام این نیست اکرام با اخلاق، اکرام با لباس تقوی هست لباس تقوی اکرام با اخلاق باکوبی هست با انتی هست. همون شوهر که میاد بلند بشیم جلوه ب بش، همون شوهری که اشتباه میکنه میگیریم اشتباه کرده ولی روش نمیگیم توقفله. اینو بدونی که این زندگی رو پایدار میکنه. سلام میشه مدت همیشه میشه و پایدار باقی مونه. رضو الله علیه و سلم المؤمن و غیرهون کریم. مؤمن غیره یعنی متقافله. خاطر میکنه. این اگر بدید چشمی شدی مثل که هیچ نمیده. این که خداوند مؤمن میده. المؤمن و کریم. المؤمن غیرهون کریم. کریم می باشد. که حساب و کتاب بکنه فلان روز عث کردید فلان روز کوتاهی کردید فلان روز این کارو کردی مردش نذرش بود گذشت عث همیشه خداوند ازش بیخوبی یاد میکنه منزع بو اقرب للتقوى به تقوا نزدیکتر یعنی تقوا از تقوای یک شخص مؤمن اینه که بکنه انسان باید حق بکنه مؤمن باید چیلین باشه چیلین سفلی داشته باشه نه من از حق خودم بگذارم خارو سرم بم بذارم دیگرم پادپا به سرم بذارم خوهرت مادرت خدرت فلانه، تو نمیخوای از حق من دفاع بکنی فلان کس اینطوری گفته فلان کس اینطوری گفته اینها دیگه تقافل کش نیست دیگه حساب کتاب کشه دیگه ما داریم اون کاری که باید خدا بکنه روز قیامت، مثل که مسئول حساب و کتابیم، داریم. داریم ما انجام میدیم توی توی دنیا. ما که نمیدونیم توی گذشته چی گذشته، چی بوده، حاضر نبودیم، ناظر نبودیم. ولی انسان نباید واسه پذیر باشه، ولی جایی ظلم‌پذیری نیست. تو ظلمه. انسان میتوشونه با عصبش با گذشته‌اش، چون توصیه خدا توصیه‌کرده. چیکار می‌خوای بکنی؟ پسته تو گرفتی، بعد چی شد؟ دلت خود میخور، خود میشه، دلت خنک میشه. چرا هی میگیم گذاشت خودش؟ مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم از متی بیرون نکردن؟ مگر او را کتاک نزدن؟ کرد؟ کاری فنگرد؟ آر بقال معلوم برده و کنیز از اونها نگرف از مشکی اینکه هیچ مسلمان شدن غنای من بهشون داد پول منال هم من بهشون داد به گرفت انتقام گرفت خیلی عفت بهتری عفت خوبی میتازه عفت که سبب میشه رسول الله اللهی والفشک و رايت الناس يدخلون في دین الله افواجا عاد سبب شد که همه قبیله ها مسلمان بشه عذه عذه که سبب میشه درهای خوبی و خوشی و خوشبختی باز بشه ولی که اگر انسان خوش باشه تون باشه بخواست مسئولیت خدایی را توی دنیا اجرا بکنه حساب و کتاب بکنه خودشو عتیق و عتیق بکنه خودش به جای فرشتگان خدا بذاره مونتر و نکیل بکنه اونجا هست که دیگه سبب میشه در زندگی کنشی دارد بشه، دیگه استقرار نباشه. این آداب زندگی دارم بهتون میگم. هم مردش، هم زندگی باید قهلنگ بکنن. چرا رسلا دازنم رو لا یفرق حدیث قهلنگ داشتیم و دوباره هم میگیم لا مؤمن مؤمنون مؤمنه. این که را هزینها خون اخراب او که مقال علیه سات و السلام. مؤمن نباید بغض زن مؤمنه رو داشته باشه. عدل نکی نگاه خوبی روش بکنه خوبی ها داره کی از الان تو این جمعه خودمون خوبی نداره بله خداوند خوبی ها تصمیم تقسیم یک زن خوب به زندگیش میرسه. یک زن نا کنید زن ها یعنی هر کدوم از شما خدا یک یعنی اتفاوت یک شروع پردی بهتون داده هر کدوم از زن یک مزیدیت ها خدا داده که به دیگری نداده یکی دستوش دستوختش خوبه یکی نمیدونم اخلاقش خوبه، یکی نمیدونم خشین نمیشه یکی نمیدونم اهل تلمه و اهل صحبت و حرفهای زیباس هر کدوم یک استعداد داره، هر کدوم یکی داره. چقدر خوبه انسان همه اینها رو داشته باشه. زندگی را هنرها پایدار میکنه. یکی از های زندگی بحث، تقابل، رفلت. انسان گذشت کنه از اون دلیل هایی که تو زندگی میگیره. ول فاجر خب اون لعیف. فجر نداره. لعیمه خسیفه گداه فاجر ظهر مؤمنه، اهل گناه اهل معصیته اگر میخواید اهل معصیت بسید روزش نکنید نه بخشید. نه از مالتو نه از اخلاقتو گفتم بخشش فقط به مال دادن نیست بخشش به اخلاقتو من این کسر رو اینجا میگم به عنوان یک خاطره که از خاطرات زندگیمون در وقت تلبگیمون دعوت می که از دوستانمون ما سه نفر بیشتر نبودیم با خودشون دو نفر براده پنی نفر سینه یورد بزرگ یک بزرگ کامل که توی فرگذاشته بودن هم وقتش. برای پنی نفر عجب, عجب پذیرایی بالاتر از این پذیرایی پذیرایی اخلاقی که تا من اوم دارم اینو فرابوش نمی تا وقت الان ده یازده دوازده هنوز در قلب منه هنوز یاد دارم هنوز حق شده و همیشه وقتی بحث اکرام میشه بیاد اون کلم میگفتد. نه اون غذایی که خوردیم. شاید تو خونه ده برابر بهتر از اون ما بخوریم و خانم های ما بپردن و درست کنن. بلکه اون چیزی که تعم، تعمش بر دل ما گذاشت اخلاقشون بود. وقتی گفتیم که اکراممون کردید دستتون درد نکنه گفت که الکریم الگی وجود بواسته. کریم شمایی که از وقت خودتون بما دادید. این شما این شمایی که بخشش کردید، اومدید از وقت خودتون به ما دادید، از محبتتون تا دم رنج فهمیدید اومدید. چقدر حرف زیبایی هست، چقدر حرف قشنگی هست. چند کلمه هم بیشتر از کریم الی یجود بوقتش. کریم هست که جود میکنه یعنی میث ثقاوتمندی میکنه با اخلاق با وقتش. وقت خودش رو به دیگران میده. اخلاق خودش رو به دیگران میده. وقتی که میاد فلانی پیشش، اخم نمی کنه، پرخاش نمی کنه. این چه وقتی اومدین به من چه فران، نورو این اخلاق خوبی نیست انسان باید گذشت بکنه انسان باید کوتاه بیاد نگویید غیر ممکنه که تو زندگی یک شخصی کمال خوشی و خوشبختی رو داشته باشه کمال زیبایی رو داشته باشه یعنی توی منزلش شیر آب نترکه توی منزلش پرده‌ها کثیف نشه لباس‌ها کثیف نشه درسته فرشش کثیف میشه نمیدونم قراضش سختی میشه و چیزهایییه زندگیه شوهر میاد تشکیل میشه یه روزم زم تشکیله نبا کنید و برده یه روز باران رحمت یه روز رد یه روز هوا یه روز هوا بارانیه زندگی اینطوریه زندگی یک نواق نیست قرار نیست شما همیشه بل بکارید و گل ببینید و بل بشنگید خب یه روز میاد توی زندگی توقع ندارید شوهر به استقبالش میره ا برد آخر شوهر بیگه برو خیلی هر حاصلت ندارد درسته شوهر داره اشتغا می کنه درسته حساب شرابه حساب شرابه جایی دیگه می نه این حتما من دیمه دارم وقت خودم بشیرم بعد آخر اینطوری از من تشکر میکنه این تشکرشه جایی شکرشه بابا جان دیگه دست خودش نیست زندگیه قرار نیست نیست که زندگیتون هر روز نصیمه نمیدونم بهار بیاد نمیدونم هر روز زمین ها سرسبز سر باشه اینسال خوشطایی چیزی توش نیست زندگی اگه یک سال میگذره چیزی توش نیست نه گلی نه میوه ای تمام نداره بعد جاها میشه که زندگی بی‌طعم میشه مثل زندگی زندگی فراز و نشیب داره زندگی فراز و نشیب داره زندگی یک نواخت نیست توقعا نداشته باشید زندگی در یک ریتم خسته کننده مثل یک ماشین با سرعت 100 سر تا بدون هیچ فیچی شما رانندگی بکنید زندگی پیچ و خم داره، زندگی دستانداز داره، زندگی چالتوده داره هستی زندگی، هم مردش هم زنش فکر نکنید که من این کالش های زندگی و این کاله ها رو فقط دیگم زنه مردم هم این تو، مردم نباید توقع داشته باشه من خطابم شمایی، شما حیل و خودت حق مردا گفا میکنه، هی نمی پشت مردا نه مردشم هم, هم اینطوره، مردشم فرق نمیکنه. کنه، حکومت بخونه زنش دید که عقمه نگید این بهمیته، به من, من براش اهمیت ندارم، این تو دلش نیام، اون مرد، اون مردم باید قوض بده حتما، یا عادت مهیانه زن طبیه خشکی میشه، نورد میشه، ترخاش میکنه، شاکر طلاقم بده، و, و هر قایه، نسنجیده و نمی دونم از عصبانیت و دار و کدر و بچه و از همه چی واسه خودت دست خودش نیست اینجا از رسوبان میگن کلی همه انقدر قاضی از منها اخر بعد داشته باشه همیمون باید این رو داشته باشیم زندگی یکسان نیست قرار نیست در یک ریتمی کایی خوش در زندگی بکنیم همیشه بهار باشه بهار توخنش داشته باشی تابستون پا، و پاییز و زمستون هم جز زندگی روی سازشه باید بسازی چقدر زنگور آتش زحمت میکشه چقدر دقیقه نگاهو کنید زنگور آتش از یک گل تلخی که نداره شما گلها رو برید بخورید تو زبونتون بوخورید یک شیرینی بزبونتون میرسه اصلا مرضی داره خوش هیچ طعمی توش نیست زنماییستون اگر به اگر به ظاهر کنی ولی اون چیزی که شیرینی داره توی زندگی که رسول الله اسم اون زندگی رو گذاشت عتل حتی یدوق رسیلت ها، رسیلت اصل زندگی هست، اصل زندگی هست. بحث زندگی، اون شیرنی هست که برداشت میشه با اخلاق نی. با رفتار نی. با سازش. حالا هم یه قسمتش به ظاهر از اون هم. از همبسری، از اون نمیدونم لباس، از اون بوی خوش، از اون غذا، یه قسمتش به بر روان برمیگرده. انسان روان خودش رو بسازه. چقدر زیبا میسازه زنبور اصل به این ریزی میاد کندوی اصلی میسازه اونم با یک نظام مهندسی دقیق که اون شیره ها نچکه نریده چقدر اون لونه را اون کندو را تنیز و مرتب میسازن یک بنیان محکم با یک ذره که هیچ وقت اون اصلی که توش گذاشتن هیچ وقت اون اصلها سنازیر نشه بحث اینه که زندگی را محکم بسادیم ما نیمدیم اینجا نظام قانونی بذاریم سخت و خوش که توش هیچ نه آرامشی هیچ نوع خوشی نباشه خیلی زندگی رو دو پایه خوشی باید باشه نرمی هم طرفی دیگه اگر اون دیوار محکم نباشه اگر اون زن به شوهرش نگه برو نماز بخون و اون مرس نگه که به زنش تجابست معاذبش باش غیبت نکن این دیگه زندگی به درس میخوره دیگه اون دیواری که الان این کندو رو که اصل ها گذاشتن اصل هی بکاری بکارید میریده تو محکم نیست پس که دیگه هم محکم هم شیرید هر دو تا با خودش با هم باشه محکم به پایبندی بشه دیوار اون کندو باید محکم باشه باید حرام ها ازش دوری بشه و خوبی ها باید پاشته بشه از ساعت از عبادت این مثال کندو هست که دوتا از اون تصابیر کندو رو میبینید اینجا بحث مدارا هست کی هست که اشتباه نکنه هیچ کس غیر از انبیاء حتی انبیاء هم شاید از اشتباهاتی در امور دنیا رخ بده همونطور که در بحث لقاء نخل داد و بعد فرمود رسول انتو معلوم با امور دنیا کن در دنیا شما آضاحترین اشتباهات از هر سر میزنه ولی اینکه بحث مدارا هست, سری هست دیگه انسان سری جاها هم زنش هم مردش مجبورن که بسازن بحث آداء و زندگی بود بحث مدارا حدیثی که میبینید حدیثی از انف روایت میکنید و از صلاح صلاح مهمونی داشت نزد یک از همسرانش که عایشه هست سفیه و گفته شده حفظ غذایی را درست میکنه و میفرسته در کاسه ظرفی خوشخابی نزد رسول الله و با خادمی خادمی را میفرسته که این ظرف را بیاره به مهمانان و الله صلی الله علیه که اون زر رو بر داره زر رو میشکنه خب اینجا یک مرد امروزی اگر این تصرفی از زنش ببینه زنه رو لگد مال میکنه خلاصی از این کارو بکنیم به علاوه بحبه... یکcontro خوش از ذکیه حالا از طرف اینجا کمال اخلاق رسول الله رو که ما مردها باید ازش الگوگیری میکنیم کرم گفتم در اخلاقه چه اخلاقی داشت چه عظمتی داشت چطور مدارا اون و را میگیره الله صلی الله علیه و آله را به هم می‌چسبونه، غذا را توش می‌کنه، بعد میاره نزد مهموناش. مهمونات خوردن؟ به عایشه که "ظرف را این بردار ظرفه شکسته شده، ظرف جدید رو بده، ظرف جدید رو می‌فرسته به سفره. باید تعویض بشه." نهام کنید، گزارش از طرفی، هم از طرف دیگه. حتی را باه مالی کردی، شکوندی، باید بدی. اشتباه کرده بدیرتش بر خورد بعضی ها میان اولوگیری میکنه نه عایشه هم به غیرتش بر خورد میگه کار عایشه درست نبود میگه عایشه فرشته بود این کارو کیا؟ کرد؟, کرد. ما باید بیم تو زندگیمون از اشتباهاتون بگیری بکنیم رسولات درس خوش شد آیش این کارو کرد میگه ما نگفتیم باید خوشی بتاری خوبی بتاری که برداشت خوبی بکنیم اون وفاداری به دستمون بیاد بذات ما گشردیم به خودمون کردیم خوبی کاشین خوبی میبینیم دست خودمونه گفتم از طرفی من باید اخناق بزشت داشته باشه از طرفی هم زن چش میبینید گوش میبینید مردها با چش عاشق میشن زنها با گوش عاشق میشن یعنی چی؟ معمولا همیشه نیست اگر یک جوانی بفاد اگر ببینیم مثلا دور مدرسه میزنه زختراکی از مدرسه میرو میان نگاه میکنه کدام یک لبخندی بیشتر میزنه کدام یک مناسب مناسبتره تو دل سره. اونو که دی حالا میاد چی؟ عجب تمام عجب چشی، عجب قواری، عجب فلانی. تلفون گیرم من عاشقت شدم شب خواب نمیرم، نمیرم خواب به چشم نمیاد، خواب و قرار ندارم حالا دیگه میاد مثل یک روبانی که ملق میزنه بودش رو به این ور بزنه، میزنه و اون ور میزنه که به یک نحری به اون زنه برسه به اون دختره برسه، تو قلبش بره اون دختره بزبخ، اثیره گوششه اون دختر خیلی کم پیشونده یک دختر عاشق قواره یک پسر باشه اون دختر با این گوش اسیر میشه با اون گوش عاشق میشه اون بعد اون بعدا وقتی که میشنوه من جانمو فداد میکنم و نثارت میکنم و من نمیدونم عشق اول آخرمی و نمیدونم از این حرفا وقتی که میشنه خود به خود اون زنه قضیه مرد میشه هر چقدر بد باشه جنایتکار باشه مشکوکار باشه چاقوگش باشه میمونه که اون زن اسیره شعار شده زن اسیر اثیر شعار میشه مرد نه اثیر خوبی میشه ببینه با چشمش دید لباس خوب دید اخلاق خوب دید رفتار خوب اسیر میشه آشق میشه وقتی که دید خندی میزنه هی تو زندگی اون مرد اسیر میشه آشق میشه این تفاوتی که خدا گذاشته بین مردان میلرخی و زنان وینیسی یا برعکسش نمیدونه بسیر کتاب چیه این تفاوتها هست. نوع ساخت مفر میکنه ساختار فرق میکنه. حالا می من اینو میخوام بگم. یک زندگی خیابونی یک زندگی که دکتر باز، بازار اون نه پسر بازار توش هستن توی کوچه و بازار ها و خابون ها از اون کلمات نیک هم دیگه میکنن زندگی اولار به این کلمات نیک. اون مرد کلام زیبا، عاشقانه، محبتامیست نسار خانومش بکنه تخدیر ازش بکنه تشکر غذاش بوده دست در نکنه خانوم تشکر بکنه ممنون خانوم کلمات زیبا و اون زنه هم سعی بکنه در ظاهر خودش زیبا بکنه چون اون مرزه میگینه پس بدونید مرد میگیند آشق میشه با دیدنش زن میشنبه و آشق میشه با شنیدنش اصباب های اختلاف ظلم و حملها الانسان اینهو کان ظلوما جهولا جه سبب ظلم میشه وقتی که شخص واجبات شرعیش ندینه حقوق زناشوی رو ندینه سبب میشه که ظلم بکنه غذا دیر بپزه نمیدونم به خودش اهمیت نده بچه هاش اهمیت نده ظلم بکنه این ظلم در حقش رو هفتین مثل شرقی رفته خواب و قرار تو زندگیش نداره اینجا چی سبب میشه اون استحکام زندگی از بین بره پس ظلم سبب میشه که اختلافات تو زندگی بیاد چه مرز ظلم بکنه چه زن مرز تو رو ظلم میکنه مرز وقتی که شب گیر بکنه بیاد مرز شب پیش خانمش نخوابه مرز هی دنبال دکتر و فقاش گردش از این و اون بره. بگرده نه به قصد دینا نه به قصد این که دعوت بده یا نمیدونم وقتش روبط به حل اختلافات مردم مسائل دعوی باشه هم موقعم اومدکشه که واصاصلا شب بیدار می کرد ولی به خاطر اومد نه به خاطر خوشی خودش این شب اینجا کباب اونجا کباب. اینجا گردش اونجا گردش، هدفش خوشگذرانی هست اون مرد. نه هدفش دعوت نه هدفش دین خب اینجا هست که ظلم و حق زن میشه مرد رو ذور میکنه. اونجا که مرد حق زن راذا نمیکنه مسئولیت زن، نیست که برای خرید بکنه از این سوپر و اون سوپر و این بازار و اون بازار بشره وظیفه مرد قبلا داشتیم و گفتی وقتی که مرد این احاس مسئولیت رو نداشته باشه که مسئولیت خرید هم اینجا ظلم میشه در حق زن زنی که باید خانهدار باشه میشه چی؟ میشه راننده ی مرد. مردم از خدا شده که تیک این زن گواهی بگیره که خر هممالی شوهر رو بکنه وظیفه شوهره. شوهر با رو بخره نزن؟ از این در و اون در از این کوچه و قیاب و موقعی که مرد خوش راحت باشه زل، ظلم ظلمی که از مرد صادر میشه گفتم ظلم که یکی دوتا نیستن ظلم ها متفاوته. جایی ظلم و ستم از من صورت میگیره جایی هم از زن و علتش هم جهله جهله به واجبات شرعی خیلی از قلب ها شکسته هستن خیلی از قلب ها قلب مثل یک شیشه هست یک بار سنگ پرداب کردی دو بار سه بار آخر میشکنه هر چه هم گل بکاری هر چه قدم انسان حرف خوش و خوب بزنه میمونه که این قلب جاهایی سبب میشه که دیگه انسان دل از دنیا بکنه دل از زندگیش بکنه ما اگر این اسباب اختلافات زندگی را میگیم و درمانهاشو پاهد که اومد به خاطر این این قلب و سوار باقی میمونه این چیزهایی که ما داره میگیم با فاطر این هم قلب مرد دارن بمونه هم قلب زن هم جلوه شکستان قبر رو بگیریم همین که چیز خوب توش بکاریم هم این که گلو میوه توش بکاریم همین که محتمیش رو نگه داریم پایداریش رو نگه داریم این حالا ما داره میگیم به خاطر خودمون هست خیلی از چیزها ظلمیه تر از دلو میشه یعنی. ظلم مرد همیشه بیرون باشه تو خونش نهایتا خب سبب میشه دل بشه یک بار دو بار سه بار همیشه تو زندگی کیمته تو خونه نیست مثلا که خونه سوزن داره فراریه از شاید زن مقصرات اون زنی اصلا که داد و بیداد و نمیدن رنجش میکنه اون ماده فراری میشه ما هم سعی بکنیم اگر مشکل از ماست مشکل خودمون رو حل بکنیم از اسباب اختلاف حوایی نسته فاحکم بینه بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى از هوای خود پیربیما کنه نشید از هوای نفس هوای نفس هوای نفس انسان اون نفس اماره هست که انسان دستور می ده که خوش باشه و خوشگذرانی میکنه. شب بشینه شب بیداری بکنه با شوهر بشینه که صبح نماز صبح شوهر نده. نگه نگمه شوهر نماز صبح این خوشگذرانیه این هوای نفسه طبع هوای نفس شدنه هوای نفس خیلی مؤثره در شکنس در زندگی هوای نفس من میخوام مثال بدنم زیاده سر عروسی ردن پای پای موسیقی نشستن هوای نفسه یا اختلاص با نامحرم، راحت هزدن با نامحرم، هوای نفسه چه مردش چه آقا خانم به سوار ماشین کرده، از هم دختر دیگایی، از هم کشوری، فلانی، از این کوچه و از اون کوچه هی راد میکنه. هی، مسخره این خانم میکنه و اون خانم. خب این چه خلبی به اون زن بذبح میمونه توی ماشین نشسته. این هوای نفسه داره، اون افتخار هم میکنه. بعد میگه خانم چیزی که کتکش میزنه، زن بذی. فرشته داد بده ای من از خدا میگم. تقوای خدا داشته باش. چرا نگوییم محرم میکنی؟ هوای نفسش. انسان نباید تیره هوای نفسش باشه، نباید فبر هوای نفسش باشه. حسادت و با تمام. و این کثیفاً من القلاطاً لیبغي بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعمل الصالحات وقليل ماهم. بسیار از شریکان. حالا چه شرکت تندیگ و شدند شوهر؟ چهون هایی تو بازار هم شریکان؟ هر کدوم میخوان از دیگری سرپیچی کن با حسابات و تمام. الا خصوصا وقتی که تعدد تو زندگی بیاد دیگه بیشتر هر کدوم میخواد شوهر مال خودش باشه نه دیگه لازم نیست که زن دیگه باشه حقوق باشه نه خواهر بدر از حقوق مادر بدر از همو خانمه رو برداشته برده توی خونه مادر مادر شوهر اون شوهر برداشته برده خونه مادرش خواهر بر بهش میخوره چه جور خانمت میترید چرا این کارو میکنی اون زنه هم اگر دید به خواهرش چیزی کادوی داد چیزی خری اون زنه بی تاب میکنه داد و بیداد میکنه چرا اون, چرا اون خریدی؟ چرا, چرا اون نخریدی؟ چرا این کار کردی چرا اون کار کردی؟ من دارم میگم اون چیزی که ما تو زندگی داریم میبینیم و اطلافات زندگی میبینیم خب اینجا هست که حسادت و سمع مال مال مرد حالا خاست داد مادرش و و یا خواهرش یا به هررکتی دیگه؟ مال خودشه ما که قرار نیست که تل رویم می یا فرراو باشیم و سر مرککه چرا این کارو کردی؟ چرا اون کاره کردی؟ خیلی بحث مهم میگن؟ حسازت اگر؟ تو زندگی اومد کل حسنات خودتون رو بر باد میدید حسادت چیه مگه؟ حسادت یه نوع بر, بر دونستن خودمونه بر دیگران وقتی که خودمون رو بهتر داریم من چی دارم؟ منم حق دارم، منم نمیدیرم، فلان دارم یعنی انسان زی چشم خودش بیاد که هیچ خود بدی نکرده ولی اون خواهرش داره بدی میکنه اون خواهرش داره غیبت میکنه فلان میکنه هی hey, داره میکشه به روح خواهرش اونا اینطورین اونا اینطورین غیبت میکنه که اونها رو از چشم خواهرش بندازه اینا به حسادت سبب شد که بدی خواهرش شوهره رو بگه تا اینجا سبب بشه محبت به خواهرش نکنه اون مرد. خب این چیه آثار حسادته آثار طمع طمع دنیا تا کی میخوام بنوشیم، رو مال دنیا میتیمونده آج چرا هرزو پیشت رو داری با قادر دنیا اینم خریف اینم داد، گذشت ایسان باید المؤمن و غرون کریم باید کنم باشه باید بازشت رو کنه اگر نکردی اونجا هست که دوشار خودخوری میشید افسردگی میشید مشکل روانی بهتون پیش میاد بعد میان بحران های روانی تو زندگی پاید اومد مشکل روانی بهتون پیش میاد، میان میشید. دلتنگ میشی دیگه هی پیام میدید از من کسی تو دنیا نیست دل من شکست دل من فلانه امروز غم نمیدونم فلان کوه غم بر دل من گذاشته شده نمیدونم فلان چیزه نمیدونم قلبم نمیدونم به صدا در اومده نمیدونم توفانی شده نمیدونم نام شده هی شعار نمیدونم از اون اشک تمساح از این ورو و این ور عجب تمساح چیزم نشده هی بزرگش میکنه برسر آقا یک فرش من جدا دارم بگم یک خانواده مده بودم برای طلاق و جدایی خانم پاشت یک تشبی داشته که به چه حقی شوهرم فرش خریده به قاهرش چرا؟ ما تو سختی داریم زندگی میکنیم ما خودمون فرش نداریم رفته به قاهرش خریده خلط کرده پس من تو زندگی؟ من یه زحمت نیکشم اون بخوره اون خوش باشه فلا برزره چی؟ فرش فرش یک حسیل یک فرش انسان میتونه هر چی بخوابه روگ گریم هم میتونه بخوابه چی میشه یک فرش زندگی نباشه ندار اونم خوش باشه ندار دلش خوش باشه تمع در زندگی سبب چی میشه اختلافات زنف ایمانم طرف دیگه و من یحش و الرحمن رحمان نفیض له شیطانم فه له قريب خانم از این طرف توقع داره که شوهره درکش بکنه. چون ناراحت فرانکست بهش حرف زده فرانکس بهش تعالی زده مادرش، فدرش، خوهرش، برادرش، سرکتی توقع داره که خدا بهش الهام بکنه بارانو رو نمیدونم محبت بر قلب سرشار بریده سرودی بکنه از یک طرفی نه ذکر میگه نه نما سنت میخونه نه تحجد میخونه توقع داره که خدا بهش الهام بکنه قلبش سرشار از محبت بشه آرامش هم بشه و من یخش عن ذکر الرحمه اینو من میگم تذکر خوصیم به صاهرانی که عادت ماهیانه دارن که نماز نمی کنن. ذکر خدا بر سر زبانشون باشه چون اون لحظاتی که نماز ندارن بدتر شیطان روشون مسلطه بس خودتون رو با ذکر خدا مجبور کنی زبانتون رو همیشه خیز کنی با ذکر خدا اگر نکردی یعنی انفجار خیلی از سلاف ها شاید بگم 50 درصد طلاق ها بر سر اینه که زن در عادت ماهیانه عصبانی میشه. تشویش میشه، میزنه، میشنه خرد میکنه، بچه‌شو میزنه، نمیذاره میزنه از خونه بیرون. چرا؟ چون یک حالت طبیعی که خدا گذاشته، فرشته که خدا گذاشته، خدا بزاشه، از یک طرف مرد بیشور که در بشور که درکشور نداره، از یک طرف زن هم که از ذکر خدا غافل از ایمانش، تابع شیطان مله مشلل بشه. بس. آقا برای اطلاع از این شوره حل اختلاف به این شیخ و اون شیخ آخرش هم دادگاه آخرش هم اسمو محو کردن توی شناسای به عنوان اختلاف آخرش نهایتشه پس خودمون رو با ذکر خدا با طاعت خدا اون زندگی خودمون رو مستحکم بکنید غافل شدن از ذکر خدا سبب میشه که بنیان زندگی ضعیف بشه سبب میشه که اسلحتون مشکل داره. عیب نباشید تو زندگی کاپشاری نکنید حق با شماست تلجاها ولی شوعت درکشو نظره چورشو نظره عنید باشی الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین ابا و استکبار کرد الان اونجا حث یعنی بناحت حث با خدا که باید سجده میکرد ولی کیو ورتی گفت انا خیر من خیلی بحث مهمه عنادت لجبازی باید برام تلویزیون بخرید بین من رو تو تلویزیون مابار نهخریدی؟ شکاست می کنم نمی فللانت می زن میزنه به پدرش مادرش خواهرش آبرووش رو چرا چون آقایت تلویزیون الیی نخریده. خریده تلویزیون شما ما دست قبل تلویزیون آسی هست از اون تلویزیون کویچیک اون چه اینجا. این از من از طلاافی که به ما مراجعه دارم میگم این نمونه ها تجربه زندگی تجربه بقل المروکن دستو پنج نرم کردم با زندگی مردم تلاق به خاطر یک منو الفیری پاشت یک که شرگت خانومه که بالدم بخار با جان عنیت نواشی عنادت صفت ابلیت هست میخوای ابلیت باشید باشید ببینید دودش کشکی بیر دخالت هم دارم دیگه از اسباب افتلافات زندگی مادر دخالت نیست چه چرا زندگی چرا خونش بکنESH نمیدانست؟ چرا جور نمیده؟ چرا نمیدانم زاده نشسته؟ خب، مادر از طرفی، پدره؟ چرا دنیتو آدم نمیکنی؟ چرا دنیت نمیدانم تو جهنم میای؟ چرا دنیت دشمنی نیست؟ مادر، پدر، خواهر، همه چی؟ یعنی سبحان الله، یک خانه زندگی که در و پدر داره، این از طرفی سن میزنشه، شراب خور میکنه، اون از طرفی سن پرد خب، این زندگی چی بهش میمونه؟ شما به من هر کسی دارد دخالت میکنه، قضابت میکنه این میگه این مرد بعد این زن تا این توری میکنه چطور درست حمل میکنه چرا فرشو عذاب نمیکنه این نمیدونم فلانه این چرا زنش بس حجابه، این مردی این توریه خب به توچ اگر زلسی و زیفره با مردی بگاه موازب زنم باش موازب دکترم باش اما سنکرد کردن، غیبت کردن، نما میکردن دخالت در زندگی زند که طبق میشه پایداری و استحکام زندگی از بین بره من قصه اینجا وردم چه اختلافاتی که بود در زمان نبوبر مرسی زنش طلاق میده با، بعد از طلاق میده اون برادر خوهره برادر اون زنه اجازه نمیده که به شوهرش بر بگرده اون زن از ادرش گذشته پشه ایمون شده همزن هم من بلیه یا لکه اکرام تو که بیه و از که ه فطلقتها والله لا ترجع ایلی ها ابدا لا ترجع ایلی ابدا قسم می کارم. قسم می کارم. قسم می کارم که اشتباه کردن ما اشتباه داره اشتباه کردن که از اشتباه دا در شعر نزنه الان براده درده خالد می از فاپ که نه من نیدارم به چه حقی کرامت خوهر رو می رفع که داشته خلق کرده. دست خوهر رو برنگاهده معمولا زنام مجرد سبحان الله کنم از این در از خواهرش ا از و جلو طرفی دیگر از مادرش میخوره از این بر پدرش شود و پدرش ش لغت از او هیچی بیاد نداره آش شووهر یک سیری زده که غلط کردم مشوررته نبازنه از تو م صورتت حرابه. ولی که آلا اومده عشق تنسو آ می دیه کود فلان شدم داد و بیدار ها می دادهره به اون هم به خاطر یک کوتاصد بار از اون دردر خورده حالا بهدرره هم اون م مجموع خواهرش که می این نومرده اگر طلاق ندهه، نگاه گتگاه به خور راه میدادن. درسته؟ اون مادر خانمه نگاه کن آبروش میبرن، نمیدونن فلانش میکنن، زندگی به حالش نمیدارن، مدنی در آسایش داشته باشه، به این زنگ میزنه، به اون زنگ میزنه، که خانمی میخواد آبروش رو ببره، پدری میخواد آبروش رو ببره، آب آبروش ریختی و این انتقامه، این دخالت در زندگی، شهر اینو نمیگه این زندگی آتش میزنه میخوام بر بگردن بر بجلن. اون مادر عاصیه اون پدر عاصیه اون برادر قهر عاصیه این صحابی میگوین خدا اونجا وقتی که این اختلافی شماس را نازل میکنه و ایذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن, اجلهن, اجلهن ثلاث عضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف اگر راضی شدند بنیکی به هم برگردند خوش باشن گذار بکنن ای تدران ای اولیای امور شما مانع نشید که اون دو تا به هم برگردن ولی متاسفانه خیلی لجوجی های اطراف سبب میشه که اختلافات یک آتشفشانی ایجاد بکنه اونم آتش فشانی که سبب بشه زندگی نابود بشه. بیمالی های که در امتداد همون بحث قبلی هست. که سبب میشه اختلافات بیاد. یکی از چیزها اهمیت ندادن به احساسات هست. مثلا اینجا من برونه مثال حدیث آیشه رو بردم. جا عربیون الان نبیشت رو قال تقبلون سوگیان. فما نقبلون؟ یکی از عربی گفت کنید شما بچهاتو رو میبوسید ما نویبوسید. رسول اللہ تعالیم او امن لکلتا الله من قلب کر رحمه من چکار کنم؟ قلبی که رحمت ازش برداشته شده اینجا من این اووردم از آثار رحمت بحثه بوسی زدن و تشکر کردن اوالا جانبین هم زن و هم شوهر چی میخواهد امیدن بچه باشه چی میخواهد زن و شوهر باشه چون زندگی پایدارش با همین ابراز احساساته با همین محبت ها هست و من آیاتی انخلق لكم من أنفسكم الزواج لتكفنوا إليها وجعل بينكم مبتدأ و رحمه ام مبتدأ و رحمه این زندگی باشه. هر تو زندگی نباشه دیگه میره. عشق های خونی از برداشت های نادرست. شاید اون عشق خونی از باشه. شاید از این برداشت اشتباه. يا يا كثيرا من الظن إن بعض الظن خانمه چون شوهرش ازش تشکر نکرده در ازای کاری که کرده دلش خونه قلبش خونه گمانش بر اینه که شوهرش الان دیگه نقشه میگله داره. مثلا بلفرد میبینیم اگر دید که مثلا شوهر داره, داره و خودش میرسه میزنه ها هوای یک زن کرده میخواهدن دیگه دیده یا مثلا اگر دید مثلا زن چپ, چپ نگاهش میکنه که میگه ها این مردم حت... هم مقصره حتما دلشتی اون زن دختری هست الان این برزاشت های نادرست هی متراکب میشه بر قلب اون زن بدبخت بدبختی شب دست خودش نیست وصلات شیطان عشق شیطان وصلاتش میکنه سبب میشه که این دلش پر از خون بشه عشق خونی بیاد از ششت بخاطر همین خداوند به قاطر اینکه زندگی پایدار باقی میبونه استوار باقی میبونه از گمان بس ما را نه کرده پیش میاد تو زندگی مثلا طرف رفتی در خونه در زدی بعد یه هم میبینید که مثلا بلتر میاد بگه چیکار داری؟ این وقت اومدی؟ به خودش چی میگه؟ به خودش میکشه حتما از دست من نراحته من حتما یه چیزی کردم یک کاری کردم حالا نمیدونی که الان فیلن مثلا به فرق یا عادت داشته یا نمیدونم بچهش لیوانش کنده تو زهرش نمیاد افتر زن داشته باشه حتما به قاطر لیوانه هست حتما به قاطر مثلا نماز و روزه هست به قاطر فرانشیز فرانشیز هست فورا میاد ها به قاطر منه به خودش میکشه به خود کشیدن برداشت نادرست سبب میشه که توی پیش میاد به خود به خود زندگی از جن بره وسواس زندگی شغل وسواس فناست. بعضی جهات زن‌ها وسواس میشن. هی hey, شوهرش میره مسافرت، هی hey, میره از و اون وقت کار داره، وسواس میشه. میگه حتما یک نیت دیگاره، hey, یک قصدی داره، یک نمیدونم فلان ی داره، وسواس به خودش. این وسواسی زندگی سبب میشه که زندگیشو از دست بده. حساسه کی کی زنده تلفن برداشته تلفونه بعدش چک میکنه کی پیام داده کی پیام نداده ها فلانی اینطوری گفت فلانی اونطوری گفت گفتم شده رقیب عتی که وسواس شبم شده. این تلفن میشه بلای جون اون زن الان خیلی از اختلافات زندگی بر اثر همین موبایله همین تلفن خانوم میخواد چک بکنه خانوم میخواد کار, کار کاراگاهیشو انجام بده که حالا بگیری شوهرش باشه با کی تماس داره نداره همین کارها وسواس خناس شیطان سبب میشه که زندگی استخدامش از ذات بده و هم زن افسورده بشه همون شوهر ظلم واسه ما کردن حقوق به عنوان اخر مطلب الان میگم که وقت نماز رسول الله صلی الله علیه و سلام بفرما انما انا بشر و انه یاتینی الخطا فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صدق فاقضي له بذلک که من قضیت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فلیاخذها او ليتركها جاهایی هست انسان به خاطر اینکه حق را به خودش بده، حالا در گفت در مقابل مادر شوهر، پدر شوهر،, شوهر هر کسی دیگر، به خاطر اینکه حق به خودش بده، یک نمایی را میکنه خودش رو به مظلومیت میزنه که سبب میشه اون چیزی که داره به دست میاره از رضایت شوهر، از مال، از محبت یا از هر چیزی دیگر یا می‌خواد اون از خانواده به درش بکنه، مادری شدا بکنه، اون چیزی که به دست میاره، اون شخص با این دیماری روانی حسادت و تمع در دنیا سبب میشه که این ظلمش قطعه از قطعه جهنم را به دست میاره رسول اصلا می فرمایم بعدی بیانا سه درش هست اون شخص به خودش حق بده با زمانش این زبانش اون چیزی که داره به دست میاره با این مزلوم نیمایی با این عشق تمساحش بدونه که قطعه از قطعه های جهنم را داره نصیب خودش میکنه و و تردار روز قیامت. باید تابان اون ربحت بده این خلاصه بحثه الان رسول الله علی محمد و آل محمد